سلام میکنم کنم خدمت شنوندگان کانال تلگرامی هزار افسان داستان های افسانه صوتی با کتاب افسانه های اوکراین در خدمتتون هستم داستانی را از این کتاب بهتون تقدیم میکنم از بخش چهارم حکایات و لطایب و اسم داستان هست میکولا چگونه گاف شد به نام خدا مرد فقیری به نام میکولا با زنش زندگی میکردند. اونها از تمام این دنیای و نفسا فقط یک خونه کهنه و ویرانه و یک آلمه بچه گرسنه نداشتن. یک روز میکولا و زنش به جنگل رفته بودن. میکولا هیزوم جمع میکرد و زنش دنبال قارچ میگشت تا برای بچه هاش شام سوپ بپزه. ناگهان، چشم زن شوهر و ارباب خصیص و ستمگری افتاد که تنابی به گردن گاوی بسته بود و اون رو به خونه میبارد. داغ میکولا با دیدن چهره زشت ارباب تازه شد. چرا که میکولا یک سال آزگار برای اون کار کرده بود و ارباب با بهونه مختلف از دادن دستموز اون تفره رفته بود. زن میکولا ارباب رو نفرین کرد و گفت: کاشین گاو مال ما بود. هم از شیرش استفاده میکردیم و هم اون رو بفروشیم و با پولش به زندگی سیاه و سرد خودمون سر و سامانی بدیم. میکولا گفت اگه حق و انصاف باشه این گاف حق منه. یک سال تمام تو سرما و گرما براش کار کردم بهای یک سال کار یک گاو میشه که ارباب ظالم و سنگده از ما دریخ کرده. زن گفت اگه ارزه داشتی حقت رو ازش میگرفتی و این همه حرف نمیزدی میکولا کمی فکر کرد حق با همسرش بود اون نتونسته بود حق خودش رو از ارباب بگیره فکری چون سائقه از ذهنش گذشت و نقشش رو با همسرش درمیان میان گذاشت اونها با هم آروم خندیدن. میکولا پاورچین پاورچین به دنبال ارباب رفت و طوری که صدای پاش رو نشنوه تناب رو از کردن گاو باز کرد و به گردن خودش بست و به دنبال ارباب روانه شد و گاو رو به سوی همسرش که لای علف ها پنهون شده بود راند ارباب همچنان از معامله‌ای که اون روز کرده بود و گاو رو به بهای اندکی از مرد فقیری خریده بود خوشحال بود و سرمز که متوجه نشد گاویش رو دزدیدند رفت و رفت تا به روستا رسید در کوچه‌ای به یکی از دوستانش برخورد اون مرد تعجب کرد چون به جای گاف تناب رو به گردن میکولا دید خندید و گفت ارباب این گاف نر رو چند خریدی ارباب گفت این گاو نر نیست است. دوستش خندید و گفت تو هنوز فرق بین گاو و نر و ماددر رو نمیدونی؟ اگه باور نمیکنی خودت با دقت بهش نگاه کن ارباب نگاه کرد و خشکش زد به جای گاف میکولا رو بسته به تناب دید عصبانی شد و فریاد زد وای خدای من؟ این چه اتفاق موسیقیه که افتاده؟ من امروز صبح گاو ماده خریدم و حالا این مرد رو میبینم. تو کی هستی؟ اینجا چه میکنی؟ میکولا گفت من هم نمیدونم. یادم نمیاد که من رو به عنوان گاو خریده باشی. ارباب گفت اما تو گاو شدی و به جای گاو من بسته شدی. چطور گاو شدی؟ خدای چشمامی روزها چه چیزها که میبینه؟ میکولا گفت من هم گیت شدم اما فکر میکنم زن فقیری منو لعنت کرده. زمانی من مرد ثروتمند اما حریص و بخیلی بودم. اون زن یک سال برای من کار کرد اما من دستمزدش رو ندادم. اونم منو نفرین کرد و گفت امیدوارم گاوی بشی و اونقدر شیرتو رو بدوشم تا دستمزد یک سالم رو از اون به دست بیارم. نفرین اون زن منو به این روز انداخته. ارباب گفت اما گناه من چیه؟ من گاف خریدم و حالا تو به جای اون قرار گرفتی. من فریب خوردم و اسباب خنده ای مردم شدم. میکول گفت یعنی چی؟ تو به گردن من بیگناه تناب بستهی و منو مثل یه گاو به اینجا و اونجا بردی و آبروی منو ریختی. من به دادگاه میرم و از دست شکایت میکنم. تو منو گاف کردی. تو به من توهین کردی. ارباب که برای آبروی خودش بسیار اهمیت قائل بود. گفت نه نه لازم نیست شکایت کنی سوی تفاهمی پیش اومده بیا این پول رو بگیر و به سراغ کار و زندگیت برو برای من هم درد سر درست نکن دوست ارباب از این گفتگو رنگی میکولا قاه قاه خندید میکولا تناب را از گردنش باز کرد و پول خوبی از ارباب گرفت و به خونه برگشت زن میکولا گاو رو به خونه برده بود و با دیدن شوهرش که دست پر به خونه برمیگشت بسیار خوشحال شد اون سال گاب ای به دنیا آورد. گوساله کم کم بزرگ شد و میکولا و زنش تصمیم گرفتند که گاو را به بازار ببرند و بفروشند. اون روز مردم دور میکولا و زنش جمع شدند و بر سر قیمت گاو با هم بحث میکردند. ناگهان چشم میکولا به ارباب افتاد که اون هم برای خریدن گاف به بازار اومده بود. پس به زنش خبر داد و خودش در انبوه جمعیت پنهان شد. ارباب گاوهای مختلف دید و وقتی به گاف میکولا رسید اون رو شناخت نزدیک شد و در گوش گاو گفت میکولای بیچاره دوباره میخوان تو رو بفروشن اگه هیچ کس تو رو نشناسه من یکی تو رو میشناسم و دیگه فریب تو رو نمیخورم اون وقت برای خودش ادامه داد از بازار خارج شد میکولا پیش زنش اومده و از اون شنید که ارباب در گوش گاو چی گفته با هم قه قه خندی و از هماغت عربا تعجب کردند. اون روز گاو رو به قیمت خوبی فروختند و به خونه برگشتند. کانال تلگرامی هزار داستان داستانهای افثانه ای صوتی <مضلع> نشانی کانال تلگرامی تی می مهران دوستی نقطه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 نقط COم مهران کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد دوستانی.